ایا در آوردن دفینه یا گنز در دوران نموده پادشاهان بودن چوک میدارن بری بیرون کنید؟ اگر توانید بیرون کنی حلال هست و این جایز هست به شرطی که این قبل از اسلام باشه اگر قبل از اسلام برش مو حلال است و شرط اینه یک ای پنج را بیرون میکنی بی به خزانه و به فقرا بدهیم. اما اگر بر اون علامات بودند علامات اسلامی بودند این چیز مال لقطه است میشه همه شو فقرا شما استفاده نکن زحمت صبح بکشید این گنج و خزانه ها دنبالش نرید من چند تا نکته به شما میگم دنبال گنج میرن که دی گنج دیگه نمیرستن خودشو تباه میکنن خیلی ها الا الله کسی خدا کمک بکنه بده اینجوری ها و ما اینها بیرون نمیشن جن بر اونها مسلط میشه جن اونو تکان هر دستگاه گنج و خزانه شما دیگه اینجا هست وقتی جن اینو جنات کار میدن در حال تحرک هست با شما نمیشه لاغم اللہ کنترل تر بعد این است که نقطه بعدی در خود خزانه ها نقطه بعدی کی هست جنات مسلطه جنات اونها اذیت میکنه وانا نقطه بعدی از این بدترات سره بیرون نمیشه اولد در قلبه های اونها تضاد بیاد یعنی اونها به بعد ما به این نمیدیم اونمیدیم در قلبها اگر صادق نباشن هرگز بیرون نمیشه کل پولها میرن خدا کل دمیار هم بکنن و به اون نمیرسن چونکه اگر در دل, دل صادق نباشن اینها نمی نمیتونن به دست بیاورن و نقطه آخرش این است که خود اینها گاز هست اونا وقتی که خزانو داشتی داخلون گاز وجود داره و این بخارات گازای بخار داره نوغره بخار داره کل اینها بخار دارن این بخارها کوشان بیان بهترین راه کسی است کسی کاری را کس کس بکنه آب پاش کم که آب و آبین و خودشه بره اونجا به پاشه تاونه گازا فروکش کنن بهینو خفه نکنن با در آخر اینو بدونی این خزانه قبلا صاحبی داشته اون صاحب چقدر استفاده کرد؟ قسمه استفاده بکنید چه خیره اون دکستما خیر روی بینی این دنیا تمام میشه، اونها که بورد آنگرافتا اونها که ماده همه برای سما خیر شده می بینی تو تک می که ما که دنبالش میری آخر که میری کامی آخر باید جنبل بر بگر خونه که خود هم دیواره بچه هم دیواره می کنی دنبالش میرید